اللهم كل بالك صا وفي كن و وليات و وقائدا و ودليلا و دست جلو ارزش جاتو فی یا یا صاحب زمان یاسا زمان یاسا ای امس جان گدای تو یا حضرت جو شبیشم همه قجبان آمان سلام تولای ام بنو الرضا علیه السلام ان شاء الله کاظم اینجا ارذال کنیم ای, ای صفا و کاظم این خوشتر از اِتش هست اونجا کنار مسجد مرچو موسی بن جعفر علیه السلام حضرت جواد الله ایم سجع جدایی تو یا هزار تجواب شرمندگی اتای تو یا هزار تجواب دائم زکار خال جره میکنن دست گره گشای تو یا حضرت جواب زیبا چری دعای سماواتیان بود مده تو سنایتو یا حضرت جو یا حضرت چبو مرا ماباز یی هر چی میخوای بهش بگو یا حضرت جواب ما باز یا آقا ای در این دعای سماواتیان گوه مده تو چوب تو حضرت جواب ای آشنای در که پیش از ولادتم دل بود آشنای تو یا حضرت چباد دل بود آشنای تو یا حضرت چباد <محن> شون آیه نور فدر بوسه می بر روی دل روای تویا هز چه توحمد زدن به آقا علی ابن موسر رضا علی افزل و سلوات افشید جواد ای مر خدا بهج مر آمد حضرت فرمود مولودی با مبارک و با برکت سر از جواد خلق سا درو حساب او چون آیه های نور پدر بوسمی زنت بر روی دل رو باید چو حضرت جم پر می زنن به سال کبوتر دل همه پی بست در هوای یا حضرت جواب زوان پا هم به بال ملائکه در سحن با صفای تو یا حضرت جا جود از تو گز جود و کرامت نهاده رخ بر در سرای تو یا حضرت جوا آقا تو کیس همیشه جواد و ای من کیستم کدای تو یا حضرت چواب قبر متحر تو در آقوش کازمه در سینه ها جای تو یا حضرت جواد این غم کجا برم که به تو شد ستم بسی از یار بی وفای تو یا حضرت جوا جوا جا فرمودت چه گذشته به جوا دلانه شریک زندگیش قاتلش بوده بعد برا فرمودن از حبیبه خدا و از زهرای مرزی سخن بمیان صدا می فاتم جان اگه تمام ها تو دل علی باشه یه سلام تو تمام خمها رو از دلم بیرون میبره آن زاد صادق آن زمانی که نویش کردن بر هی سلام روحیه می داد بر حیدر سلام فاطمه تو خن از انسانی بمی خدا سلامتش بداره تو شعر زیباش داره صدا زد علی جان گفت داشت که سلامت نمی کنم گفت جواب سلامم نمی گفتم چایی, گفتم چایی وسیع بلا فضل مصرفا گفتا که گوش جان به کلامم نمیده آره دوتا امامان امامانمان به وسیله امسرانشون مسموم شدن امام مجتبا علیه سلام حضرت جواد و علیه از کجایی مسیبت جواد لئم را بخان حالا این بیت بیادم اومد همینو مزن که سب کن تا جان من آخر به سرایه در شاید عویی بدوید برای شما دلدادگان عزت جواد ام بز بشه ام زرکه اخیی کبزدن سابقه داره کربلا کبزدن کجا کف زدن آیا عباس میدون رفت کف زدن آیا علی اکبر به میدون رفت کف زدن به قول معروب خجحالی کردن به پیغمبر برداره میدون میره آیا حضرت قاسم میدون رفت اینا خجحالی کردن نه نه نه نه, نه, نه و زمانی چه حسین صورت به صورت اعلی اکبر گذشته شد به جانب از هم شعر اکبرم را که به خون آقش در در همان وقت مرا هم کشدم برای امام جوادم صدا میزن کن قدر کف نزنید شراق جا مزن کم سب کن تا جان من آخر به دم جان دادنم مادر و دیدار به مادری چه صدا میزه مادر دشمنان تو از خاک بیرون میاره به سزا عملشون میرسانم میسوزونمشون امام رضا به کرد چی شد جوادم صدا زد بابا مگه مادرم زهرا چه دار اما شام قریبان جواد و نمه السلام ای سازگان سازگار حالا میشه ای بیت و زبان حال جواد و میخوان خان میخان آقا جان رفتی به جندت روی پیغمبر ببینی رخصار سیلی خورده ی مادر ببینی ما به امام جواد درس کنیم آجا وقتی شما را مسموم کردن دو بشان تشی جنازه عجیبی شد اون همه اجلال یک خانتون آتش نزدن اما کربلا خیمه را تش زدن خدای یار ز اونایی که چنجوری میخونند خیمه ها می‌سوزد شب شب توره عزا کربلا ماتم سراز شهر بلا چون در من و انتظار مگر دشمنم میدانه <تصفيق> که زدان خیم را آتی، یا نخیم بیماری، بیتابان میزد خسی، چنان زینه خسی. قرآن زینه حسین جانان زینه حسین یاد همه شهده ها شهده ها که امروز به شهده درسته حسین جانان